فرادر عزيزم أغاية صابر بيات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم خسنا وشيد سلام بخير بقيت شمان بخير كيف حالك يا صابر؟ الحمد لله أنا بخير أنت كيف حالك؟ أنا أيضا بخير والحمد لله قبل زهرتي عفوا قبل زهرتي من أز حضورة دارين مصاحبه وموافقه شما براي الضبط إن مصاحبه وبخش داخل السايت والمكالمات العربيه من ازت خير خير خير تشكر مكنم صابر جون ايي ممنونه سلامت باشيد ممنون خواهش من جدا باشيد خب صابر جون شما چه مزاياي بينظيري بينظيري چه مزاياي بينظيري داخل السايت والمكالمات العربيه رو ديدي ايي اولا تشکر کنم از شما بابت صبر و حسلهی که دارید تو کار کردن با ما و اینکه از ابتدا تمام مسائل و از همون واوش شروع کردید با ما کار کردن و صبر و حسله به خرج دادید بایش مکنم به به ما که میگفتید که همین آتما کسایی بودیم که میدونستیم که خودمون نمیدونیم درسته دقیقا کمک کردید که ما از اون نادانی که نسبت به زبان عربی داشتیم تقریبا پیشرفت کنیم و از همون ابتدا خشتایش رو تو هم بچینیم و بیایم بالا خیلی خوبه ما از همون اول این کتابو که کتابهی, م... کتابهی که شما با معرفی میکردید و اینکه که میدادید و از ابتداد شروع کردید از همون واو اول عربی شروع کردید و ما خودمونو با شما سعی کردیم وقت بدیم که مثلا بتونیم چملاتو یاد بگیریم دستور زبان و علم صرف و علم نه و سایر مواردو خیلی خوبه خیلی خوبه من تا حالا خودم این روش یادگیری رو تجربه نکرده بودم که مثلا بخوام مثلا بیام از اول شروع کنم همهش فکر که باید از اونجایی که بردم شروع کنم برم دیدم نه من اون چیزی که خودم اومدم خیلی چجوری بهتون بگم اون چیزی که خودم یاد گرفته بودم زیاد به دردم نمی الان میدونم که مثلا جمله رو چجوری باید بسازم جمله چه اعضایی تشکیل میشه چه چیزایی داره نه حالا به قول شما مثلا نقش کلمات تو جمله چیه معنی لفظ داخل جمله چیه و سایر موارد بسیار عالی خیلی برای من خوب شد بسیار عالی بسیار عالی دیگه چی, چی دیدی داخل ساعت مکالمه عربی مزایای بی‌نظیر رو دیدی جوز جزواتی هم که شما ارائه دارید جزوات خوبی الحمدلله یعنی مثلا همین مجانی ال... مجانین الادب و یک متن قدیمی که حالا ما توش روش میخونیم و میبینیم درس میکنیم خودش برمیگرده به زمان مثلا جملاتی که مثلا زمان است پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از تعبیر مؤمنین السلام خوب خوب. خیلی از این موارد و خیلی از این قواعد و جملات خب معصومین تو اه، اه، به لحاظ علم معصومی که داشتن خودشون به کار می بردن خب، بهترین عربی و قطعا هم خود پیامور اکرم و هم پیامور مؤمنین و اهل بیت سلام الله علیه ها استفاده می و تمام قواعد هم به نظر من اینکه اونا استفاده می کردن که شما می گید خب عربی اصلا از زبان اونها نشأت می حالا. درست دقیقا بله دقیقا کاملا درست گفتی کاملا درست گفتی آفرین بهت خب صابر جون تا الان از من از بنده از من رافع عدم هاشمی از لحاض فرهنگ از لحا راجب زبان زبان عربی چی یاد گرفتی خب ببینید یکی از این که یکی از این مواردی که شما وقتی میخواید یه زبانی یاد بگیری آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم اون منطقه است دقیقاً. برای مثلا ما اگه مثلا میخوایم عربی عراقی یاد بگیریم یا مثلا عربی اجازی میخوایم یاد بگیریم یا عربی خریجی میخوایم یاد بگیریم خوب به باید آشنایی داشته باشیم ببینیم که مثلا اونها چه چیزی میگن یا مثلا عربی فسی خب عربی فسی عربی که تقریبا تو کوچه و بازار کاربردی نداره ولی خب توی فیلم ها، توی اخبار و توی معامله که میشه قرارداد هایی که نوشته میشه قطعا کاروردش اه، خیلی زیاده ما برای اینکه بتونیم یاد بگیریم و با فرنگ اون مردم و با آداب رسومشون آشنا بشیم که شما الحمدالله این رو تو قسمت های مختلف ما توضیح دارید خب از صدر که عربی چجوری اومد و چجوری عربی نه چجوری تکمیل شد و تا نفرات من اون علمایی که رو گفتید یادم نیست که تو زبان عربی تخصص موارد یکی یکی با ما توضیح دادید که این نفرات چه کارهایی در راستای تکمیل زبان عربی انجام دادند که ما رو آشنا بکنن. من حق و والانصاف وقتی که زمان عربی و بعضی از اساتید هم وقتی میخوان اساتید ادبیات عربم میخوان راجبش صحبت بکنن یا مثلا چیز بکنن تو بعضی از مسائل گیج میشن و مثلا تو همین بحث معرفه اونکری که با هم می‌کردیم و قبادی که میگفتید خیلی ها خیلی چیز میشن خیلی گیج کننده است خیلی پرچ دقیقاً خب باید. شما اینو به زبان ساده تر برای ما گفتید با تمام جزئیاتش و بلن اندکی مسلط شد خدا راشو, خدا راشو. شما هم ماشاءالله یه مردی هم باهوشی خدا راشو زنده باشیم, زنده باشیم. خب صبر جون بی دیگران بی بینندگان عزیزمون چی توصیه میکنی برای یادگیری زبان عربی بفرمو روشنه هست که اگه میخوان زبان یاد بگیرن حالا نه تنها عربی یا هر زبانی که میخوان یاد بگیرن درسته به داشتهایی که داشتن حالا اونا رو کنار و با هر استادی که میخوان کار بکنند، با هر کسی از ابتدا شروع کنند، از بای تقوڵ معروف از بای بسم الله شروع کنن احسن. و بالا بیان که بتونن ریشه ها را یکی یکی بذارن رو هم و آجرا آج رو هم بذارن و بیان دقیقا بالا. دقیقا دیگه بهشون چی توصیه میکنی همین خب بله. خوب. من ازتون خیلی تشکر میکنم باز هم ازتون بابت حضورتون در این مصاحبه و شما برای ضبط این مصاحبه بخشش داخل ساعت مکالمه عربی باز هم ازتون خیلی خیلی تشکر میکنم. ممنونم ازت صابر جون سلامات بشید می بینم تو انشالله تا جلسه بعدی بیم داخل تا اگر از پر از دوست‌مون فایده زنده ماشین ممنونم یا علی می‌بینم باش حرفتر باش روز خوبی داشته باشید یا علی